السلام عليكم خوارا عزيزه ليلى هادي كيف تري سلام استاذ الحمد لله مال خوام كيف حالك يا ليلى أنا بخير الحمد لله عفري عفري اولا من برايه موافقه شما برايه ضابطين فيديو بخشش داخل سايت من مكالمه عربي وتشريف شما انجو داخلين مصاحبه من ازته خيل خيلي خيلي أشكر ميكن تو پاس گذارم. خواهیش کنم. خواهیش کنم. اصلا زنده باشی. خوار عزم. لیلیا جون. لیلیا جون. چرا بهت گفتم اسمتون البته اسم شریفتون لیلا نا لیلیا. درسته؟ بله. خب چرا بهتون گفتم یه رازی از رازهای زبان عربی. چرا باید اسم شریفتون لیلیا باشه نا لیلا. بفرمو؟ گفتنی اسمایی که اکثرا چهار حرفی هستند بار منفی دارند. دا ادقول معروف جهنمی هستند آدم انگار آدمیه که خیلی زج کشیده به خاطر همون بار منفی که رو اسمش هست. حالا هر چی عدد و رقم این اسم بالاتر باشه، بیشتر باشه، بهتر انرژیش مثبتتره. درسته. بستگی داره به انرژیش. افرین خب لیلیا جون دارم الان میگم لیلیا جون لیلیا بهتره اوکی لیلیا جون شما داخل سایتمون مکالمه عربی چی نقاطی مثبت رو دیدی؟ من نقاط مثبتی که کلا تو این سایت دیدم این از لازه حالا اون ساختار سایت بگم این که همه چیز برنامه، طبقه بندی شده است دست بندی شده است یعنی من یه چیزی میخوام خیلی راحت میتونم بهش دسترسی پیدا کنم پیدا کنم دوستد دنبالش نمیگردم و این که یکی هم پاسختهیتون پشتیبانیش خیلی خوبه خدا. برنام من که دیفی رو میخواستم دانلود کنم اوکی نبود گفتم اوکی نیست در جا برام مثلا فرض یک دو دقیقه درست شد. خدا رو. دیگه چی هست؟ چی های بی نظیری بی نظیر از داخل سطح مکارم بین نظیری بین نظم و پشتیبانیش به یه طرف این کپون های سودی که برا ما ها تعلق میگیره اون عالیه خب واسه هر دورهی که شرکت میکنیم یه کپونی شامل حالمون میشه مثلا من خودم نزدیک سی درصد اینا تخفیف کرده. درسته بلی درسته. من داخل مدتون هستم شما خوار عزیزا زنده باشین. خب تا الان از بنده از من رافع ادم الهاشمیه زبان عربی چی یاد گرفتی؟ خب از لحاظ اون دستور زبان خب من چیزایی که یاد گرفتم جدید بودن. خب بالاخره ما تو مدرسه دبیرستان یه چیزایی در مورد عربی میدونیم دیگه. درست. ولی خب وقتی وارد این کلاسا میشادم میدونه که یاد نگرفت. در واقعی چی یاد نگرفته. در واقع هیچ بلد هم ساختار هم اون تلفظ‌های اینا همشون یه ذره انگار تازگی دارن دیگه باید ذهنمون از اون آموخت قبلی پاک ده ده ده. کنیم، ریستش کنیم، بعد بیایم مثلا آموخت جدیدو جدید رو کنیم و خب اونم چون شما با حسله با آدم یاد میدید، با دلیل و مدرک، این خب برای خود من <تصفيق> که خیلی راحتتر تو ذهنم تثبیت میشه و اینکه چون با حوصله آموزش میدید آدم نمیترسه چی میگن اعتماد به نفس آدم پایین نمیاد برعکس چیزایی که به آدم سخت میگیرن و آدم زده میشه نه خب باعث شد که خب من بیشتر علاق من بشم کاملا درسته کاملا درسته الان برای شما چی چیزهای خیلی قشنگتر شد البته زمان عربی همش قشنگه راجب زمانم چی چیزهای قشنگتر شد برای شما چی چیزهای خب یه قشنگیش این بود که خب البته شاید من در مورد بقیه زبان ها خب تحقیقی نکردم دیگه خب اون جبههی که ما ایرانی کلا به عرب زبان ها داریم یه ذره خب اون جبهه من کمتر شده اون هست اون تأثب ایران و چیز هست ولی آره. خب یه هم هم. یه ذره هست حس آره, <تصفيق> دیدم نه ادبیاتش قویه زبانش قویه هفت برای گفتن داره. حالا من به بذارم کنار، بالاخره میگم میخوام یه تمدنی بشیم، باز زبانشو یاد بگیری. نمیشه که الکی من با کسی دشمنی کنم، باید زبانش رو یاد بگیرم. حالا اگه با کسی هم دشمنم باز زبانش زبانشو یاد بگیرم. دقیقاً بله، دقیقاً. اینکه انگار برای من ورود به یه دنیای جدیده مقصد اطلاعاتی که شما در مورد کشورهای عربی الان به هم خوب خب دیدگاه هم باز کرد مثلا جبهه گیری که ما ایرانیا نسبت به عربا داریم خب کمتر شد آدم انگار شناخت پیدا میکنه که چه اتفاق اونجا داره میفته یا دلیل دشمنی چیه یا اصلا این دشمنی خوبه بده حالا هر چیزی خیلی خوبه این بسیارای. خب میتوند الان چند جمله برایمون بیسازی بی به زبان عربی مثلا چی در حالت رفت نصب هر هرچی دیلیت میخواد من از دهنم از دهنم اوکی. اگر میخوای از دفتری تستفاده کنی مشکلی نیست من یه میخوا... انشا اگر میخوای از جلست قبلی کن، استفاده کنی مشکل... استفاده کنی مشکلی نیست خب من... نوشته بودم یه انشا بر خودم نوشته بودم این بود اقراه. اقراه. بخور. انا بخورم لی... اقرائی بخورم لیلی هایدی ولدت آمونه اون عدداشو نمیدنم 1360 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد عمری الان سلاس و عربعون آمد و بعدی ثلاث بودم لدیه سلاس اخوات و اخیم لدیه. لدیه دارم لدیه, لدیه, لدیه دارم. و قبلش مش مش ولدت فالدروست دروستر ولد تو بدونی او مادام تو نه ولد تر نمیگم لذی اه, اه أبل, أبل جمله اول جمله اول جمله مشه ما تو آه آه بولدتو. بولدتو. بولدتو. بولدتو. تو متوجه شدم خب استمره ادامه بده لدیه سلاس و اخواتم دارم لدیه بله لدیه, لدیه. انا, ا... انا تهران لقد درست و قانونم درست درست گفتی بله استيقظ استيقظ كل يوم في الساعه استيقظ استيقظ بيدار مشم استيقظ كل يوم في كل يوم في كل يوم كل يوم في الساعه 6:30 صباحا الساعه 6:30 صباحا سابوها. OK درسته. خب. آه، انا آه، اعملو لمدت ثمانیه ساعت. آفرین. لمدت ثمانی ساعت. خیلیه. آه، فی بعضی ایام، آه، آعلم لغت العربية. لغت العربية. عربیه. درست. عربیه. آفرین، آفرین بافت ها. مفعول به اینجا. درسته مفعول به آفرین. أه وحاولوا أن أتعلم شيئا جديدا. ألي؟ كل يوم من. أحب أن أطبخ أطبخ. دارس قبتي. أحب أن أطبخ فعلت وجودي أنا. أحب أن أطبخ. أوه شميبازيل. أنا. هي هات جديدة. فور مسافزی. آبجوش. آبجوش. عالیه. خیلی عالی. خوب. انباه آش. بسیار عالی. و رامن بفرست دیگه. چاش. بر شما. چاش میسلامت. خوب استمری. چاش به خونه. با تو شو خیمی کنیم. خوب, خوب بفرم و. اعلامات باشه. آنها احتمو به سحت جسدی و روحی. درسته. انا احتمو به سحت جسدی و روحی. دلی انامو فی وقت متاخر من اللیلی درسته فی وقت متاخر من اللیلی خب اینکه انشاء بود من انگه چند وقت پیش نوشته بودم یادم رفته بود به شما نشون بدن ام بدن اوکی عم ندارم خیلی همین همین بود همی. بسیار همی بسیار عالی آلیه آلیه. آلیه. بسیار عالی. من بهت واقعا خیلی افتخر میکنم خیلی خیلی افتخر میکنم مسترد. زنده باشیم باشی خدا خیرت بده من ازتون خیلی خیلی تشکر میکنم وازم ازتونم تشکر میکنم تابینات ازتون تشکر میکنم برای تشریفتون ازجا ممنونم من باید تشکر کنم زنده باشی ممنونم انشاءالله میبینم تا جلسه بعدی بیمیده خدا انشاءالله ممنونم فعلا یا آید خدا میبینم